سوره ممتحنه هم یکی از سوره های مدنی هست نوید و سوره هست که بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد سوره ممتحنه وجه تصمیش هر سوره ای ارز کردم تصمیت الکل به اسم الجز چون در بخشی از اون سوره اون عنوان آمده به این خاطر سوره را به اون نام گذاشته مثلا حش چونکه برای اولین بار یهودی ها را جمع کردند و اخراج کردند حشر به من جمع شدند و ممتحنه چون که اون زنهایی که فرار کردند از مکه ایمان آوردند و فرار کردند اینجا خداوند فرمود که شما از اونها امتحان بگیرید اگر واقعا در ایمان خودشون صادق هستند اونها را بذارید اینجا پس اون زن مورد امتحان قرار می گیرد شما میشید ممتحن او میشه ممتحنه به این خاطر باسمگان ممتحنه اما مناسبت این سوره در اون سوره هم بحث جهاد بود و زاجر بر منافقین سرزنش بر منافقین که به یهودی ها گفتن شما بیرون نرید ما با شما هستیم اینجا هم بحث جهاد اما سرزنش بر مؤمنین که در امر جهاد کوتاهی میکنند اینجا سرزنش بر کی هست؟ بر مؤمنین بعضی از مسلمان ها کوتاهی میکردند اونها را خداوند مورد عتاب قرار داده این آیات اولی این سوره مبارکه شعن نزولی دارد یک داستانی هست پس منذری این آیات که اون داستان را من خب، ابتدا خدمت شما عرض بکنم بعدن انشاءالله این آیات را می فهمید در سال هشتم هجری شما قبلا خاندید در سوره فت که در سال ششم هجری صلح هدهبیه شد و مدت صلح چند سال بود؟ ده سال اما دو سال نگذشته بود که مشرکین عهد را شکستند مشرکین خیانت کردند به قبوله خزاعه که حلیف رسول الله و حلیف مسلمانان بود به اون قبیله حمله کردند و شبیخون زدند بسیاری از مردانشون را کشتند اون قبیله چون که همپیمان با رسول الله بودند اونا فرستاد مدینه گفتند که ما حلیف شما هستیم ما با شما عهد بستیم شما از ما دفاع بکنید ما مظلوم شدیم قریشی ها با بنو بنوبکر شبانگا به ما حمله کردند ما را کشتند لذا آن حضرت صلی الله علیہ وسلم دیدند که مردم مکی خیانت کردند آماده شد آن حضرت که برم به جنگ اهل مکیه و خواستم برن مکه را فتح کنن. این سال هشتم هجری بود یعنی کمتر از دو سال بعد از اون جریان حدبیه اما مسئلات بر این بود که پیغمبر لشکر بزرگی جمع بکند مخفیانه یه هاو بره تا مردم مکه غافلگیر بشند هدف رسول الله چی بود؟ هدف رسول الله این بود که غافلگیر بشند نتونن جنگ بکنند تسلیم بشند مکه بدون خونریزی به دست بیاد چون حرم امن الهی هست رسول الله نمیخواست اونجا خونی ریخته بشه اونچه که پیامبر عظیم و شعن خدا اراده کرده بود خداوند اون ارادهش را محقق کرد در فتح مکه هیچ کسی کشته نشد اما زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت آمادگی می کرد و به صورت مخفیانه برنامه ریزی می کرد پول جمع می کرد اسلحه جمع می کرد مردم و مجاہد جمع می کرد در همین زمان یکی از اصحاب نام حاطب ابن ابی بلتعه که این صحابی صحابی بدری بود یعنی یکی اصحابی مخلص بود که در جنگ بدر همراه شده بود در کنار رسول الله بود و اصالتاً این صحابی اهل یمن بود در مکه کسی را نداشت خانهش در مکه بود وقتی که از مکه هجرت کرده بود مادرش اونجا مانده بود زنش مانده بود یا برادرش بعضی از نزدیکانش اونجا بودند لذا این صحابی گفت وقتی که به مکه حمله بشه خب اهل مکه حتما انتقام خواهند گرفت زورشون به مسلمانان نمیرسه اون خیشاوندان مسلمانان رکی را که اونجا هستند حتما اونها را خواهند کشت بقیه هرچی هستند قریشی هستند خیشاوندان خودشون هستند افرادی مثل ما که کسی را در مکه نداریم حتما زیر دست و پاها لهمی میشه تلفات برای ما و برای خانواده های ما هست اینجا بود که میخواست پیش مشرکین یک حسن نیتی از خود نشان بده نامه به مشرکین نوشت در اون نامه اشاره کرد که رسول الله صلی علیه و وسلم داره میاد خب این نامه مسلحت نبود و این خبر به قریش مکه برسه این مسلحت نبود اما این صحابی اشتباه کرد صحابه اشتباه هم می کردند اما خداوند عزیز و جل بعدن بخشید در همین آیه میخوانید که بخشید این نامه را به دست یک زنی به نام ساره فرس یک زنی بود این زن هم غیر مسلمان بود در مکه چیزی نبود عرض کردم این اواخر خیلی قحط بود و مردم مکه در زیق و در مشکلات بودند این ساره یکی از ها بود یکی از مغنیه ها بود که در مجالس برای مردم آواز می‌خواند غیر مسلمان بود اما اون زمان غیر مسلمان ها هم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمع داشتن که کمکشون بکنند و ما ارسلنا که الا رحمت للعالمین رحمت برای همه عالمیان و جهانیان بود لذا این ساره از اونجا از مکه آمده بود مدینه برای خودش پول جمع می کرد بیچار چیزی نداشت مسلمان هم نبود رسول الله هر یکی دیدن که انسانی هست آمده برای کمک بهش کمک کردند اما این صحابی حاتب ابن ابی بلتعا این ساره را خاص بهش گفت بهت یک نامی میدم این را مخفی بکنی کسی نبینه اونجا ببر برسون این قدر درهم بهت میدم یک درهم زیادی نام برد پانسد درهم گفت کمتر بیشتر بالاخره او قبول کرد نامه را برداشت غیر مسلمان بودون و اون نامه را برداشت و حرکت کرد روی شطرش به طرف مکه مکرمه اینجا به اصطلاح چنده خودش رام کرد پور هم جم کرد این خیانت را هم میخواست بکنه الله عزوجل از طریق واحد به پیامبر عظیم و خبر داد که نامه از مکه رفته از مدینه رفته به سوی مکه مصلحت نیست که این نامه برسه این نامه بد گرفته بشه رسول الله صلی الله علیه و چند نفر را فرستادن که اون زن را تعقیب بکنن این نامه را ازشون بگیرن در رأس اینها سیدنا علی رضی الله تعالی او بود اینها زن را دنبال کردن تعقیب کردن بین مکه و مدینه در محلی به نام روزه خاخ اونجا باغچه‌ای بود آبی بود اونجا زن را دیدند که اونجا در استراحت میکنه سیدن علی رضی الله تعالی ها و چند صحابی دیگه این زن را محاصره کردند گفتند اون نامه را بده اون گفت چه ای؟ گفت همون نامهی که از مدینه برداشتی میبری گفت نه نا چینی نامهی با من نیست گفت تلاشی میکنیم خلاصه ای داشت خرجینی داشت هرچی داش وسائل داشت وسائلی داشت تو وسایلش گشتن چینی نامهی ندیدند اون زن گفت با من هیچ چیزی نیست سیدنا علی رضی الله تعالی نهو گفت که کلام خدا و کلام رسول الله هیچ خلاف نیست قطعاً این نامه هست اون زن را تهدید کرد گفت یا نامه را بی یا تلاشی بدنی میکنیم لباست را در میاریم تلاشیت میکنیم این زن ترسید و اون وقت از لای موهای خودش بافته بود اون نامه را از لای موهای خودش در آورد این نامه را داد نامه را که داد اون زن را با نامه برداشتند و آوردند در مدینه منوره خدمت رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که نام دید ناراحت شد، حاتب ابن ابی بلال تارا گو خواست، حاتب تو اینکار را کردی. وقتی که مشخص شد که حاتب اینکار را کرده، بسیاری از مسلمانان ناراحت شدند. عمر فاروق رضی الله تعالیٰ نه که همیشه طبیعتش یک طبیعت جلالی و خاصی بود و بسیار سرسخت بود بر مخالفان گفت یا رسول الله به من اجازه بده که من گردن این منافق را بزنم رسول الله صلی الله علیه و سلام گفت نه ای عمر الیس من اهل بدر آیا مگر این حاتب اهل بدر نیست لعل الله اطلا الى اهل بدر مگر نمیدانی که خداوند از همه اهل قطعاً از همه اعمال و احوال آینده اهل بدر خدا خبر داره با وجودی که خبر داره به اونها گفته فقال اعملو ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه مگر خدا به بدری ها نگفته که هر کاری میکنی بکنید من برای شما بهشت را واجب کردم او قد غفرت لكم یعنی که این کلمه هست مگر خدا به بدری ها نگفته که قد غفرتو لکم من شما را بخشیدم چرا اے عمر تو می خیانت بزنی فدمعت عینا عمر عمر, عمر چشمش اشکبار شد وقال الله و ورسوله اعلم این در بخاری هست خدا و رسولش بهتر میدونه پس من نمیدونم بنا بر این نگذاشت عمر تهاجمی بکنه اما از حاتب پرسید که ای حاتب تو چرا این کار را کردی تو چرا این اشتباه را کردی حاتب چی گفت گفت یا رسول الله قسم به ذات خداوند که لم افعله کفرا ولا ارتدادا من انکار از روی کفر نکردم من کافر نشدم من مرتد نشدم من به دین گزشته بر نگشتم لم افعله کفرا ولا ارتدادا عن دینی من از دینم بر نگشتم ولا رزم بالکفر بعد الاسلام من بعد از اسلام به کفر هرگز راضی نیستم یا رسول الله من مسلمان هستم رسول الله تأیید کرد فقال نبی صلی الله عليه وسلم صدق راست میگه ولی خب حاتب اشتباه کرد به خاطر این جریان به خاطر اینکه وقتی خانواده شون تلف نش این اشتباه را کرد مصلحت نبود ولی این اشتباه را کرد حال ببینید این نامه و محتوای این نامه در تفاسیر آمده این نام را که خطاب نوشت به سوی اهل مکه از ادبیات این نامه از کلماتی که خطاب برای اهل مکه نوشته مشخص میشه که این مرد چه ایمانی دارد با وجودی که نامه را نوشته اراده ندارد که زیاد جلوی اهل مکه فروتنی کند کند گفت که ان رسول الله الله عليه و سلم توجّه الیکم کلیل یسیر گفت ای اهل مکه رسول الله بسوی شما چنان لشکری در میآره توجّه الیکم کلیل کل لشکری که مصر شبس شب چطور سیاست یعنی از بس افراد زیاد امبویی شب احساس میکنی یسیر کسیل اما چنان غران هستند و غرش در مثل چی مثل سیل سیل وقتی که بیاد چنان صدای مهیب و خطرناکی در همه چیز را از بین میبره این لشکر که بیاد شما را از بین میبره در واقع اینو نماز روحیه اون را هم ضعیفتر می میکرد و اقسم بالله در اتمام میگه حضرت خطاب میگه و اقسم بالله من به خدا سوگند یاد میکنم لو صار الیکم وحده لنصر الله علیکم اگر ایشون به پیش شما بیادت خدا یاریش میکنه رسول الله به بیاید خداش یاریش میکنه چرا فانه منجز الله ما وعده چون خدا اون چیزی که اینو وعده کرده که تو رو پیروز میگردونم قطعا اون وعده را محقق می کند پس قطعا بدونید که پیغمبر خدا میاد اما این نامه که گرفته شد آن حضرت صلی علیه و وسلم به حاتب گفت بارے از این اشتباهات نکنی تکرار نشه الله عزوجل هم این آیات را نازل فرمود اما این آیات ببینید خداوند اول چی میگه یا ایها الذين امنوا ای کسانی که ایمان آوردید وقتی که خداوند گفت ای کسانی که ایمان آوردید حاتاب ابن ابی بلتاعه از حال رفت غش کرد از بس که خوشحال شد که من این اشتباه بزرگ را کردم هنوز خدا من را جز مؤمنین میداند من را جز مسلمانان میداند این علامه قورتوبی نوشته ذکر ان حاتبا لما سمع يا ايها الذين امنوا حاتب وقتی که شنید يا ايها الذين امنوا غشى عليهم من الفرح بخطاب الايمان از بس خوشحال شد از حال رفت که خدای عزوجل او را خطاب کرده به خطاب ایمان لذا الله تعالی به این دست از مؤمنین چه دستور داد اللہ می فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اے کسانی کہ ایمان آوردید لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء شما نگیرید دوست دشمن من را و دشمن خودتون را اولیاء دوست صمیمی هیچ وقت با دشمنان خودتون و با دشمنان من خدا دوست نباشید من قبلا خدمت شما عرض کردم که اولیا موالات دوستی قلبی و سمیمی را میگن. دوستی قلبی با هیچ کافر ہی جائز نیست. نه اون کافر حربی و جنگی نه اون کافر زمی که با ما زندگی می کند و همسایه ما هست. نباید با او قلبا دوست بود. و اون کافر چینی که ای برادر مسلمان و ای تاجر مسلمان که تو داد و ستد میکنی معامله میکنی میتونی باش معامله بکنی اما یه وقتی ببین دوستیش در دلت نیاد چونکه این خدا را نمی پرستد این بط می پرستد اینکه یعنی که اصلا کومونیست از خدا را باور ندارد دشمن خداست خدا او را آفریده تو او را دوست می داری خدا او را آفریده همه چیز بهش داده او نسبت به خدا کفر می کند تو دوستش داری اون وقت انتظار داری که خدا با تو چی کند لذا الله می فرماید لا تتخیذو عدووی و عدوکم اولیاء این اینجا این دستور را که خدا داده سببش را هم ذکر کرده سبب اول عدووی دشمنی دش دش من است سبب دوم تنها دشمن من نیست و وكم دشمن شما مسلمانان هم هست پس این را دوست برای خودتون قرار ندهید تلقون اليهم بالموده یعنی القا می کنید پیام می فرستید پیام دوستی برای اونها میفرستید در حالی که اون کافر نسبت به قرآن شما منکر است نسبت به پیامبر شما کافر است نسبت به خدا شما کافر است وقد كفروا بما جاءكم من الحق در حالی که کفر کرده به اون چیزی که پیش شما آمده از حق پیشما مسلمانان حق آمده حق چیه توحید حق چیه قرآن حق چیه رسالت رسول اللہ او نا توحید را قبول دارد یک تا پرستی را قبول ندارد نا, نا قرآن را به عنوان کتاب خدا قبول دارد نا رسول اللہ را به عنوان نبی خدا قبول دارد بازم تو دوستش داری؟ و دیگه وقد قد کفرو بماجاکم من الحق این سبب ثوم است که دوستی نکنید سبب چارم یخرجون الرسول اینها اخراج می کنند رسول را و یعنی اخراج کردند و خود شما مسلمانان را چرا شما اخراج کردند گناه شما چی بود ان تؤمنوا بالله ربكم بی این دلیل دلیل اخراج بی این دلیل کہ شما ایمان آور دید بی که کی رب شماست بی این دلیل شما را اخراج کردند لذا شما باز هم میخواید دوست اینها بشید خدا مانع دوستی باید میفرماید. اون چیزی که نمی گزار شما با اونها دوستی سمیمی بشید اون چیه؟ این کنتم خرجتم جهاداً فی سبیلی وابتغاء مرضاتی اگر شما مسلمانان خارج شدید به منظور جهاد در راه من و به خاطر طلب رضا من اگر شما خارج شدید پس چیکار کنید؟ دوست نشید با اونها این جهاد شما خودش معنی دوستی هست جهاد میخواد که شما با اونها دوست نشید دشمن بشید تسرون ایلیهم بالموده این بیان تلقو هست تلقون ایلیهم بالموده چطور؟ پیامی دوستی به صورت مخفیانه با اونها دوستی میکنید در حالی که الله میفرما اگر کسی دیگه نمیدانم، من خدا که میدانم. امروز اگر یک مسلمانی خطا میکند هم شاید ما بقی مسلمان ها ندونیم خدا میدوند. دارد با دشمنان خدا دوستی میکند دارد مثلا برای با اسرائیلی ها دوستی میکند جاسوسی می کند با امریکایی ها دوستی می کند با روس ها دوستی می کند با مشرکان دوستی می کند بر علی مسلمانان داره اخبار مسلمانان را می رساند بخاطر دلار بخاطر منافع مادی بخاطر حفظ خودش بعضی ها بخاطر حفظ خودشون چی ها که نمی الله از عز وجل می فرماید من که میداند اگر کسی دیگه نمیداند اگر رسول الله نمیداند خدا که خبر داره و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم الله میفرماید من بهتر میدانم آنچه که شما مخفی کردید و ما آنچه که شما علنی کردید و من منكم فقد ضل سواء السبيل این سمر موالات است نتیجه موالات است اللہ می فرماید هر کسی این کار راست شما بکند هر کسی با دشمنان مندوس بشه همانا گمراه شد از راه راست گمراه شد خیلی مسلمانان واقعا گمراه هستند بعضی از جوانها در این فضاهای مجازی دوس میشن با کفار با چه افتخار میگه من دوستی دارم اسمش الکساندر هست نمی یا اسمش فلان هست افتخار میکنه افتخار داری که با یک بطپرست دوست شدی با یک پرست دوست شدی این افتخار هست این دشمن خدا این کسی که در قلبش محبتی از رسول نیست ایمان به خدا نیست ایمان به قرآن نیست چطور مسلمانی که به خدا ایماندار این را برای خودش افتخار میدانه لذا الله می, می فرماد و من فعلهم منكم فقط سوا اوسببییل؟ هر کسی از شما این کار را بکند او گمراه شد از راهه راست. این ی قفوک و بعد خدا اطال معنی دیگری باید می فرماید؟ اینها اگر شما را هر جا ببینند دشمن شما هستند دست زیان و ضرر به سوی شما بلند میکنن دست، ضربه به شما بلند میکنن هیچ کوتاهی نمیکنن در ضربه زدن به شما. این یک اگر شما را ببینند بیابند یکونو لكم لک می باشند برای شما دشمن دشمن شما میشن و یابسطتو الیکم عیدم. و بلند می کنند دراز می کنند بسوئی شما دست های خودشون را و السنت هم اگر دستشون نرسد زبانشون را بسوئی بدی شما بر علی شما تبلیغات می کنند و دیگه اینها که دوست می شن با شما علت اصلی خیلی از کافرها هم اظهار دوستی با مسلمان می کنند خیلی از مسیحی هاستم می ما شما را حمایت می کنیم پول میخواهید پول میدیم این تبشیری ها هدفشون چیه و ود لو تکفرون دوست دارن که شما کفر کنید یعنی دوستی که با کفار باشد و انسان در این دوستی رعایت نکرد خدای ناکرده آخر منجر به چی میشه به کفر میشه خیلی هستم وارد دیگر اقوام شدن آخر همون فرهنگ را گرفتن همون لباس را همون آدات را همون همه چیزشون مثل اونها شده و ودلو تکفرون ها دوست دارن که شما کفر بکنید و اگر این کفار فرض خیشاوند شما باشند اولاد شما باشند مگه این خیشاوند اولاد در روز قیامت به دست شما، به درد شما میخورد؟ لن تنفعكم ارحامكم هرگز فایده نمی رساند به شما ارحامكم یعنی خیشاوندی شما ولا اولادكم یعنی خیشاوندان شما ولا اولادكم و لا اولاد شما يوم القيامه بین بينكم روز قیامت بین شما خدا جدایی می اندازد اد وارد یک وادی دیگه می شه شما یک وادی دیگه والله بما تعملون بصير خداوند عزوجل این اینجا ترغیب به سوی اخلاص داده خداوند به اون که شما عم عمل میکنید بینا هست قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم خداوند جل یک الگوی برای ما بیان میفرماید این الگویی ابراهیم خلیل الله است ابراهیم خلیل الله وقتی که قوم ایمان نیاورد پدر ایمان نیاورد اعلام قطع رابطه کرد گفت من میرم دیگه من با شما زندگی نمی کنم شما نزدیکترین افراد من به درد من نمی خورید وقتی شما ایمان نمیارید شما خدای من را به یگانگی عبادت نمی کنید نیاز به شما ندارم پس می فرماید بهترین الگو برای شما ابراهیم هست قد كانت لكم أُسْوَةٌ حسنة في إبراهيم. همانا هست برای شما الجوی زیبا در ابراهیم و اللهین معه کسانی که با ابراهیم بودند. سیدنا قالوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ زمانی که گفتن به قومشان ابراهیم و همراهان ابراهیم گفتند هم با زبان گفتن هم با عمل گفتن دیگه ترک کردن اراق را شام آمدن گفتن انا براءه منکم ما بیزاریم الشماع و مما تعبدون من دون الله وهم جنین از خدایان یعنی باطل شما از اونهایی که شما عبادت میکنید بجز الله ما از همه بیزاریم کفرنا بكم وبذا بیننا وبينکم العداوه والبغضاء این بیان برائت است چطور بیزارید کفرنا بكم ما نسبت به شما کفر کردیم یعنی پشت دادیم قبول نداریم شما را و بدعا بیننا و ظاهر شد آشکار شد بین ما و بین شما عداوه و بغض بین ما و بین شما عداوت و دشمنی و بغض ابدا همیشه همیشه از این به بعد ما دشمن شما ما اصلا شما را دوست نمی دانیم ما اصلا شما را خیشاوند نمی دانیم شما دیگه دشمنید تاکه دشمنید حتی تؤمنوا بالله وحده حتی که تنهایی به خدا ایمان بیارید بالله وحده یعنی خدا را یگانه بدانید چنان ایمانی ایمان, ایمان به ذات خدا داشتند اما به یگانگی خدا ایمان نداشتند خدا را یگانه بدانید اون زمان ما با شما دوست میشیم اون زمان با شما رابطه برقرار میکنیم الا قول ابراهیم لعبیه خداوند میفرمای ابراهیم بهترین الگو هست مگر این سخن ابراهیم الگو نیست کدوم سخن ابراهیم علیه سلاط و سلام به پدرش گفت ای پدر من میرم تو را ترک می کنم ولی برای تو از خداوند مغفرت می خام. ببین از خداوند مغفرت می خوام چه نه این که یک کافر و یک مشرک را خدا ببخشد نه چنین چیزی ابراهیم نبی خدا بود اینقدر علم داشت منظور ابراهیم این بود که از خدا میخوام که تو را هدایت کنه ایمان بیاری و بعد از اینکه ایمان آوردی و مردی بخشیده بشی به این معناست لاستغفرنا لا لك اما در آیه دیگه الله تعالی میفرماید فلما تبین له انه عدو لله تبرء منه وقتی برای ابراهیم آشکار شد روشن شد که پدرش دشمن خداست یعنی با کفر مرده مرد بدون ایمان مرد بعد از اون تبر رأمین گفت خدا من از اون پدر بیزارم دیگه بعد از اون دعا نکرد پس اون دعا را که کرد وما کاند دعا ابراهیم لعبیه الا عم معدت وعدعیه چون وعده کرده بود بر اساس اون وعده ادامه داد اما وقتی که مشخص شد که بدون ایمان هست و بدون ایمان رفته اعلام براءت کرد الله می فرماید الا قول ابراهیم مگر این سخن ابراهیم ل ابیه لاستغفرن لك که به پدرش گفت من حتما برای تو مغفرت می طلبم از خداوند یعنی طلب هدایت و مغفرت اما ابراهیم همون زمان گفت که ای پدر من به از خدا می خوام ولی خودم اختیاری ندارم مختار نیستم انبیا اختیاری ندارند بارها گفتیم یک مسلمان فکر بکنه یک مسلمان فکر بکنه این انبیایی که این همه قربانی دادن برای خدا و دین خدا مثل ابراهیم تو آتش افتاد ملک خودش را ترک کرد ترک وطن کرد فرزند خودش را قربان کرد چه قربانی بود که ابراهیم نداد همه قربانی‌ها را داد ولی تمنایش اینه که پدرش مسلمان بشه ناش براورده نمیشه چرا؟ چونکه اینجا هرچی خدا بخواد پیغمبران زحمت میکشند ولی اختیار ندارند اختیار مال خداست به این خاطر از پیغمبران حاجت نخواهید پیغمبران نتوانستند مشکل خودشون را حل کنند و حتی اگر خدا هم نخواست مشکلشون حل نشد ابراهیم تنها عرضوش این بود که پدر ایمان بیاره ایمان نیاورد خدا هم نخواست نوح علیہ السلام هزار سال نو سد و سال برای دین خدا زحمت میکشه خب این پیغمبر با این جایگاه دلش میخواد فرزندش مسلمان بشه نمیتونه در اختیار نوح نیست در اختیار الله است اللہ میفرمه انہو لیس من آلک فلا تسالنی مالی لك بیه علم اون چیزی که علمش را نداری این نو از من نخو، این اهل تو نیست. پیغمبر فرزندش هست. اون چیزی که دل پیغمبر میخواد نمیشه، اون چیزی که ثمر قلبی پیغمبر نمیشه. یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، امام ولیم بیا، اولاد آدم هست، دلش میخواد. که همه این قریشی ها ایمان بیارند عموش ایمان بیاره ابو لهب ابو طالب تلاش میکنه نمیشه انک لا من من احببت پیامبر کسی که دوست داری نمیتونه هدایت کنی چون تو مختار نیستی پس ببینید بهترین انسان های روی زمین و آسمان اینها ابراهیم نوح محمده اینها خواسته شون نمیشه برای خودشون برای نزدیک ترین افرادشون پس برای منو تو چطور میتونه اینا خواسته برارده کنند حکمت را خدا بهتر میدونه وقتی که شما مؤمنین هم این چیزها را میشنوید شما هم دل تو میخواد کاش ابراهیم با این همه زحمت کاش پدرش ایمان می آورد کاش فرزند نو ایمان می آورد دل پیغمبر خدا نو نمیشکست کاش اموی رسول الله ایمان می آورد ولی الله چیز بخاط اومیشه حکمت و سر را خدا بهتر میدونه ولی گای که فکر میکنی فکر به این نتیجه می رسیم که الله عز وجل به وسیله موارد و جزئیات می نشون بده که ببینید شما انسانها ها جایگاه پیغمبر را با جایگاه خدا قاطی نکنید جایفای پی، جایگاه پیغمبر جایگاه پیغمبری است جایگاهش خیلی عظمت داره اما نه اینکه قدرت خدایی داشته باشه و مختار کل مثل خدا باشه نه اختیاری نداره لذا ابراهیم به پدرش میگه و ما املک لک من الله من شی من مالک نیستم برای تو ای پدر من الله از خدا یعنی در دربار خدا هیچ چیزی من دست من نیست مالك فقط الله هست مختار فقط الله هست ربنا عليك توكلنا مناجات ابراهيمي مسلك الأنبياء في مسألة الدعاء ربنا عليك توكلنا أي رب ما فقط وفقط برتو توكل کرديم وإليك أنا بنا. ربنا عليك توكلنا بنو بنوصيد در إظهار تبري از قوم و از خیشاوندان و از همه نزدیکان اعلام بیزاری کرد ولی توکلش به خدا بهش آسیب نرسانه یه وقتی ربنا علیک توکلنا ای رب فقط و فقط بر توما توکل کردیم و ایلیک انبنا در کفایت و مهمات و ایلیک فقط و فقط بسویت و کردیم و واليك المصير وَفَغَتْ وفغت بسويت وبازگشت است لذا ادامه مناجات ابراهيم ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا بار اله ما قرار ندي فتنه براي یعنی ما را اونها قرار که سبب فتنه بشند واغفر لنا و ما را رب ربنا ای رب ما رب ببخش این ربنا بار بار ارز کردم هم باعث ایجاد شوق برای دعا کننده میشه و هم جلب می کند رحمت خدای از و جل را وقتی که خدا را با اسمای حسنا و با صفات زیبا صدا می باربار بار بار رب یعنی ای ذاتی که تو پرورش دهنده من هستی ای ذاتی که تو تربیت کننده همه ما هستی همه ما را از ابتدا به وجود آوردی نطفه بودیم علق شدیم گوشت شدیم خون شدیم پوست استخوان تا اینکه کم کم کم کم به این جایگاه رسیدیم همین کار مال تو این ربنا تمام این معانی و مفاهیم را در برگیرنده است پس این رحمت خدا را جلب میکند واغفر لنا ربنا انك انت لازیز الحکیم بار الها همانه تو هستی فقط غالب و دستورات با حکمت است لقد كان لكم فيهم اسوه حسنا لذا خداوند میفرماید برای شما در این افراد در ابراهیم و امثال ابراهیم یعنی همراهان ابراهیم بهترین الگو هست اما این بهترین الگو برای چه کسانی هست؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر برای اون کسی که امید به خدا دارد امید دارد یعنی يخاف الله امیدی به ملاقات خدا دارد و از خدا می ترسد از خدا می ترسد و از روز آخرت می ترسد یرجالله ولی و ملاقات تفسیر مدارک تفسیر کرده یخاف الله ولی و از خدا می ترسد و از روز آخرت هم می ترسد برای انها الگوه است ومن یتولا فإن الله هو الغنی الحمید اینجا خدای تعالی در, در پایان این بحث تهدید می کند بر موالات خدا میگه دوستی نکنید با کفار اما ومن ی هر کسی دوستی بکند تولی دوستی کرده با کفار هر کسی با اونها محبت بکند با اونها سمیمیت داشته باشد با اونها ارتباط داشته باشد نشست و برخواد داشته باشد به عروسی اونها میره به عزای اونها میره عروسیش اونها می آیند. یعنی بیشتر رفقاش دوستانش تمام کسانی که باش نشاست و برخاست در اون قشره پس خدای عزوجل هم برای این این این بنده مسلمان پرواهی نداره فئن الله هو الغنی خدا از این بنده بی‌نیاز است تو که با دشمن من دوست میشی پس منم از تو بی‌نیازم نیازی ندارم تو بیای مرا سجده کنی تو بیای مرا ستایش کنی خدا توفیق را ازش سلب میکند خدا بینیاز است یعنی چه؟ یعنی توفیق را ازش سلب می کند الحمید خدا ستوده شده است بندگان دیگری دارند که خدا را شب و روز تسبیح و تقدیس می کند. لذا نیاز به تسبیح و به تعریف این بنده ندارد این, این قدر گستاخ است که با دشمن خدا دوست است و شب و روز با دشمنان خدا سپری می کند عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ الله يحب الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ در آیات ابتدایی این سوره مبارکه ما خواندیم که خداوند دستور دادند با دشمنان خدا و دشمنان خودتون موالات و دوستی داشته نباشید چونکه موالات اونها و دوستی با انها برای شما نفعی ندارد ضرر دارد اما سودی ندارد اما بعضی از این دوستی هایی که خداوند از و من فرمودند بالخصوص از این که با مشرکان مکه دوستی داشته باشید یه بشارتی هم بعد از اون خدای تعالی و یک مجدی هم بیان می اون مجد این هست که توقع و امید هست که به همین زودی این دشمنی تبدیل به بی دوستی بشه اشاره است به این که اونها ایمان می‌آورند. چون که بعد از این که مکه مکرمه فتح شد و مکه مکرمه توسط مسلمانان و رسول الله تصرف شد اکثر اهل مکه ایمان آوردند لذا الله عزوجل ان فتح را اون پیروزی را در واقع بشارت میده بزرگ ترین فتح همینه که تعداد مسلمان ها زیاد بشه و کسانی که قبلا دشمن بودند الان بیان برادر بشند عصال الله ان يجعل بينكم و الذين الذین منهم موده توقع هست امید هست که خداوند تعالی قرار بده بین شما و بین کسانی که دشمنی کردید با آنان امید هست که بین شما مودت ایجاد بشه محبت ایجاد بشه والله قدير، والله غفور الرحيم، خداوند قدير هست، قادر است توانا هست. والله غفور الرحيم ترغيب بسوی توبه هست که وقتی که اونها توبه بکنند، اونها که برگردن بسوی خدای از زوجال، خداوند برای اونها بخشاینده و مهربان است. بعد از این که خداوند تعالی مجده و خوشخبری دادند قانون دوستی را با کفار در ادامه بیان می‌فرمایند قبلا خدمت شما این مطلب را ذکر کردم ارز کردم اما برای اینکه بیشتر در ذهن بماند تکرار می‌کنم که دوستی با کفار سنو هست سه قسم است یکی از اقسامش موالات نام دارد موالات یعنی سمیمیت قلبی دوستی قلبی دوستی او را در دل داشته باشی چطور محبت چنین فردی در دل انسان باشه وقتی که انسان ادعای ایمان می کند ادعای محبت خدا می کند ادعای محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم می کند چطور محبت دشمنان اینها در دل ما باشد گاهی ما دو برادر هستیم و یک برادر با کسی درگیر میشه با یک زیدی درگیر میشه و با او مشکل پیدا میکند اون برادر دوم خود به خود با اون مشکل دارد خود تو که با او درگیر نشدی، ولی انسان چون برادرش را دوست دارد دشمن برادرش را دشمن خودش میداند دوست برادرش را دوست خودش میداند وقتی که برادر که محبت او نسبت به محبت خدا و نسبت به محبت رسول الله نباید جایگاهی آنچنانی داشته باشد به خاطر برادر ما با افراد دوست میشیم به خاطر برادر با افراد دشمن میشیم پس چرا به خاطر خدا با افراد دوست ننشیم و به خاطر خدا با افراد دشمن نشیم. لذا کسانی که اهل کفرند، اهل ععاد هستند، کسانی که خدا را قبول ندارند یا خدا را بیگانگی قبول ندارند کسانی که رسول الله را به عنوان رسول خدا قبول ندارند کسانی که قرآن را قبول ندارند نباید محبت اینها در دل باش جوانانی که محبت می با بعضی از هنرمندان غیر مسلمان بازیگران فوتبال کسانی که تو فیلم ها بازی می کنند کسانی که خانندگی دارند و افراد مختلف اینها باید تجدید نظر بکنند گای انسان خوبیت یک طرفداری کسی میشه گای محبت تو دل میاد که انسان به خاطر رو گریه میکند بعضی واقعا تا این حد پیش رفتند اینا بدونند که در دلشون ایمان خیلی ضعیفه و ایمان آخرین رمقایش را دارد که این نسبت بی غیر مسلمان و نسبت بی کافر دوست باشه که براش اشک بریزه رضا خدا تعالی موالات را دوست ندارد موالات یعنی سمیمیت قلبن دوست داشتن یہ صورت دیگه بود که مدارات مدارات یعنی با کفار کنار آمدن با کفار رفت و آمد داشتن با کفار نشست و برخاست داشتن قلبن نیست ولی خب به خاطر بعضی مسلحت ها هست مدارت در سی صورت درسته چون که دیروز سوال کرد در سی صورت مدارت درسته با کفار یک به خاطر دفع زررشون ایک کسی از کافر می اگر باش ارتباط داشته نباش امادگر باش, باش غط رابطه کنم فردا ضربه میزنه زنه بمن لذا به خاطر دفع ضررش باش ارتباط برقرار میکنه گاهی زنگ میزنه گاهی یه تبریکی میگه این اشکال نداره نا نه این شعائر غیر دینی را تبریک بگه دوم خاطر مسئلات دینی انسان دوست میشه هم خوبه دوست میشه که محبت اسلام در قلبش جا بگیره دوست میشه که محبت اعمال در قلبش بیاد دوست میشه که اخلاق خوش اسلامی را ببیند و متاثر بشه لذا به این نیت هم خوبه سوامی صورت اینه که ضعیف انسان است مهمان انسان است چرا او را کرام میکنی چرا غذاهای خوب جلوش میذاری پذیرایش میکنی چون مهمان تو اومده خونه لذا اینا مشکل نداره که انسان مهمان را ولی که کافر باشد با او ارتباط داشت اما همه این صورت در صورتی است که اون کافر کافر حربی نیست کافر حربی به کدوم کافر میگویند اونی که در حال جنگ با ما با مسلمانان است اونی که در حال جنگ هست بر کشور ما و بر کشور اسلامی یورش برده حمله کرده اشغال کرده غارت کرده اون نه اون بهی ہی صورت نا و نه ارتباطی به صورت دیگه باش داشته باشه و سومی مواسات هست. مواسات یعنی هم دردی. مواسات یعنی اینک برای کافر مشکلی پیش آمده، مصیبتی برایش آمده، آفتی آمده، تو میری هم دردی میکنی. سیل برده خونش را برایش خیمه میبری، برایش کنسرفی میبری، برایش تون ماهی میبری، برایش غذا و برایش آب میبری این همدردی هم کردن به وقت مصیبت این هم اشکال نداره به شرط اینکه کافر حربی نباشد یعنی در حال جنگ با ما نباشد غیر حربی باشد اشکالی ندارد پس این سنو دوستی هست اینجا هم خدای تعالی می فرماید که شما می تونید دوستی داشته باشید ارتباط داشته باشید شما ایک کشورهای مسلمان ارتباط داشته باشید با اون کفاری که با شما در حال جنگ نیستند نه با کشور شما با هیچ مسلمانی در حال جنگ نیستند با اینها ارتباط شما اشکالی ندارد لا ينهاكم الله خداوند باز نمیدارد شمارا را عن الذين لم يقاتلوكم في الدين از آنانی که با شما نجنگی دند در دین در امر دین با شما نجنگیدند ولم یخرجوکم من دیارکم و را از دیار از خانه و کاشانه تون بیرون نکردند پس خدا شما را باز نمی دارد انتبر روهم ان که با انها احسان کنید و تقصیتو الیهم نسبت به اونها انصاف داشته باشید عدالت داشته باشید خدا شما را باز نمی دارد ان الله يحب المقسطین خداوند انصاف کنندگان را دوست دارد ببین دین اسلام چه دین زیبایی هست که الله تعالی دوست دارد ترا حتی با دشمنان خدا انصاف داشته باشید با انصاف باش با کافر هم انصاف داشته باش ظلم نکن ان الله يحب المقتين انصاف کنندگان را دوست خب پس با چه کافری من دوستی داشته نباشم ارتباط داشته نباشم انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين جز ان بعض میدارت خداوند شمارا از آنانی که جنگید انبیا شما در امر دین یعنی در چرا می جنگت؟ ببین جنگ کافر بخاطر یک جزیره ای نیست بخاطر بخشی از زمین ها نیست که او میگه مالمن شما بگی مالمن ہے بخاطر این با شما می جنگت که شما این دین را داری مسلمانی یعنی جنگ جنگ دین هست انگیزه انگیزه دینی هست و اخرجوکم من دیارکم و شما را بیرون کردن از دیار شما و ظاهر علی کم یعنی که خودشون مستقیم بیرون نکردن حمایت کردن پشتیبانی کردن بر بیرون شدن شما بر بیرون کردن شما حمایت کردند لذا برای شما شما را خدا باز داشته ان تولوهم با این کافران دوست باشید شما را بیرون کردن یعنی همه مسلمانان یکی هستند لذا الان برای کشور مسلمان درست نیست جایز نیست که با اسرائیل دوست بشه اسرائیلی که ما را بیرون به بخاطر دین مسلمانان را فلسطینی ها را بخاطر مسلمان بودن جلاواتن کرده بخاطر مسلمان بودن هر روز درگیری هست اونجا جنگ جنگ اسلام و یهود هست لذا بقیه کشورها اسلامی اجازه ندارند حق ندارند درست نیست برایشون که رابطه برقرار بکنند این رابطه ناجائز نا درست یا کسانی کو را حمایت میکنند والظاہر علی اخراجکن بر اخراج شما چی حمایت میکنند لذا با اونها به هیچ وجه موالات و دوستی درست نیست و من يتولہم فاولائک هم الظالمون هر کسی با اونها دوست دوستی بکند دوست باشد این افراد این گروه ظالم هستند نباید باید با کفار دوست يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن اینجا خداوند عز و جل قانونی برا بیان فرموده برای اون زنهایی که ایمان میآورند از دارالکفر هجرت می ما در سوره فتح خاندیم که یک قرارداد بین رسول الله و کفار قریش امضا شد در اون قرارداد یک طرفه بود اونا ظلم کردند در اون قرارداد این بود که هر هر کافری از مکه اگر آمد پیش شما مدینه آمد شما جای ندید برگردانید اما هر کسی که از شما آمد مرتد شد و مکه آمد ما بر نمی این را خدا این را رسول الله پذیرفتن امضا شد اما اینجا قرآن میگه این شامل زنان نمیشه چندین نفر از زنان چندین نفر از زنان مسلمان شدند از مکه مکرمه و از اونجا فرار کردند آمدن خودشون را به مدینه رساندند قرآن میگه اول از اونها امتحان بگیرید امتحان یعنی انگیزهشون را مشخص بگیرد واقعا ایمان آورده بعد از این که مشخص شد که مؤمن هستن حق ندارید اینها را به کفار برگردانید بعد از حدیبیه اولین زنی که مسلمان شد و فرار کرد شوهرش پشت سرش آمد به مدینه منور خدمت رسول الله رسید گفت که شما با ما عهد بستید که هر کسی از ما آمد برگردانی این زن من آمده آن حضرت فرمود ما در مردها عهد بستیم در باره زنها عهد نبستیم این آیه نازل شد بعد از اون چار پنج تا زن دیگه هم آمدند مسلمان می شدند و می گرختند. کفار تغازا می کردند پیغمبر فرمود نه ما زنها را بر نمی گردانیم اون پیمانی که ما با هم دیگه بستیم اون در رابطه با مردها هست یک زنی از زنهای مسلمان پنج تا یا شش تا از کفار آمدند یک زنی از زنهای مسلمان که دختر ابو سفیان بود ام حکم بنت ابی سفیان اینجا به مسلمان بود و مرتد شد کسی سراغش را هم نگرفت رفت مکه لذا الله عز وجل همین میفرماید یا ایها الذين امنوا ای مؤمنان اذا جاکم جا المؤمنات هر گاهی که زنهای مؤمنه پیش شما آمد مهاجرات در حالی که هجرت کردن فامتحنوهن انهر امتحان کنید به همین خاطر این سیر یعنی زن امتحان شده الله اعلم با ایمانهن الله بهتر میداند ایمان آنها را خدا میدونه ولی خود شما مسلمانان نمیدانید شما امتحان کنید. فاين علم تومون نمؤمنات. اگر شما اونها را مؤمنات دانستید یه نتیجه ای که مؤمنند. فلا ترجیع و هن الكفار بر نگر دانید آنها را به کفار چرا؟ چون که این زنی که مسلمان میشه و میاد نکاحش خود به خود غط میشه نکاح فسخ میشه باطل میشه الان این مسلمان زن مسلمان کی انجام ده دیگه برای اون شوهر کافر جایز نیست حرام میشه برای هم دیگه لا نحل لهم نا این زن های مسلمان حلالن برای آن شوهرانی کافر ولا هم یحلون و کافر حلالاً آن عن شوهرانی کافر حلالن برای این زنان مؤمنه اینها دیگه نکاحی بینشون نیست پیش یک بیگانه داری یک زن مسلمان را میفرستی فرستی نفرست خب اون زن مثلا از پیش شوهرش آمده اون شوهر کافر اون شوهر مشرک فرض کنیم که ده هزار درهم براش هزینه کرده بهش مهر داده و پولش را برگردانید محری داده حال مهرج زایش شد تو این زن مسلمان شد پولش،, پولش را برگردانید. اما این پول را چطور برمیگردانید؟ هر مسلمانی از مسلمانان خواست که با این زن ازدواج بکند مهریهایی که قرار بی از بین زن بده به این زن نده به این شوهر قبلیش بده چون او مرییه داده یک بار مهریه گرفته مهریه را به اون بده در صورتی که کسی اغدش نکرد این زن بیت المال اون مهریهی که کفار دادن بهشون برگردانند رسا خدا می و آتو هم بدهید به اون کفار ما انفقو آنچه که انها خرج کردند ارچه که خرج کردند هزینه کردند مهر دادند مهر را بدهید و بعد از اینکه که مهر دادی خب جایزه با این زن که تازه مسلمان شده ازدواج کنیم، خب این تازه مسلمان شده شوهر داشت، خدا میفرم اشکالی نداره، خود با خود به هم خورد، فقط ادایش بگذرد، ادی که تمام شد، نکاب کنید، مریشون رو هم بدید ولا جناح علیکم گناهیش نیست بر شما، انتن کیحون نه، ان اینکی انسان ها را نکاه کنید، اذع آتی زمانی که شما به این زن ها مهرشون را مهرشون را بدید و نکاحشون کنید این زن برای شما حلاله ولا تمسکوا بعصم الکوافر و شما نچسبید امساک به معنی چسبیدن چنگ زدن محکم گرفتن عصم جمع است اسمت عسمت اینجا مراد نکاح است کوافر جمع کافره از کافره معنیش چیه؟ یعنی اگر زن کافری که قبلا در عقد شما بوده وال آن کافر شده و رفته شما به نکاش اچسپی نکای بین شما خراب شد به هم خورد ببینید اگر یک مسلمانی زنی را در عقد خودش داره و این زن بیچاره فریب میخوره و میره یهودی میشه میره مسیحی میشه میره یه دینی دیگه اختیار میکنه خود به خود بین این مسلمان و بین اون زن نکاح باطل میشه نکاحی باقی نمیماند لذا خداوند میفرما اگر زن شما که مسلمان بوده و فرار کرده رفت اونجا شما دیگه به اون نکاحی که قبلا بین شما و او بود به اون کا متمسک نشید به اون نکاح شما متوصل نشید که زن من هست مخیر زن تلیس الان یک بیگانه هست کافره و لا تم سکو نگیرید شما به نکاح های کافره یعنی نکاحی نکاح که داشتی تمام شده خب اگر شما حزینه کردی برای این زن رفت در دارالکفر پیش کفار رفته کشور کافر رفته از اونا بخواید که من برای این زن اینقدر مهر کردم مرزینه کردم مهر من را برگردانید اونها باید به شما مهر شما را برگردانند واسالوا ما انفقتم. شما از اونها بخواید هرچی که هزینه کردید ولی اونها از شما بخواند هرچی برای زنان خودشون هزینه کردند یعنی شما مهر دادید از اونها بگیرید اونها مهر دادن از شما بگیرند ذالکم حکم الله این دستور خداست یحکم بینکم بین شما خداوند فی السلامی كنت. والله علیم حکیم هر چیز را خدا میداند حکمت تمام کارها به دست خداست لذا شما به دستور خدا عمل کنید وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ ازواجِكُمْ قانون سفهم را خدا می فرماید. اگر کسی از شما همسری داشت و همسرش کافر شد و رفت به دارالکفر به کشور غیر مسلمان فرار کرد رفت روسیه رفت دارالکفر روسیه هست زن شما مسلمان فرار کرد و رفت روسیه اونجا دین و مذب اونها رو اختیار کرد خب خود به خود تمام شد بین شما حال اونها مهر شما رو نمی دند مهریه شما را نمیدن. شما میتونید انتقام بگیرید انتقام یعنی چه؟ دو صورت داره آیا را مفسرین به دو صورت تفسیر کردن یکی اینه که زنی از اونها فرار کرد اینجا آمد این زن وقتی که آمد و مسلمان شد هر مسلمانی با این زن عقد کرد مهر را به اونجا بر نگردانه به شوهر قبلیش برنگردانه محر را بده به بی همین مردی که باخته از زنش فرار کرده محر را به بده؟ به بی این مردی که زنش گریخته زنش رفته کافر شده تا این که اونجا هر کسی این را عقد کرد محر اون زن شوهر زنی را بده منظور اینه که شما جا بکنید این یک تفسیر است یک تفسیری دیگه اینه که فعاقبتم یعنی شما از اونا انتقام گرفتیم به این معنی که شما گاهی درگیری هست بین مسلمانان و غیر مسلمانان جنگ هست اگر شما مسلمانان حمله ی چیزی به اون کشور داشتید اونجا غنیمتی به دستتون آمد مالی به دستتون آمد این مال را قبل از اینکه بین خودتون تقسیم بکنید شما مجاهدان اول این مردی که زنش فرار کرده اول به این مرد مهریه بدید از همون مالی که از اونجا به دست آوردید از اون مالی که از اونجا اون به دست آوردید به این مرد مهریه بدید چون زنش فرار کرده بعدا هر چی باقی ماند بین خودتون تقسیم کنید. ز خداوند میفرماید و ان فاتكم شیئ من ازواجكم اگر فوت شد چیزی از شما از همسران شما فوت شد یعنی چه یعنی از دستتون رفت. اینجا فوت شدن به معنی مردن نیست. خب از دستتون در رفت به در الکفر رفت فعاقبتم فعاقبتم یعنی نوبت شما رسید. نوبت شما رسید به چی دو معنی داره ارز کردن فعاقبتم نوبت شما یعنی جاعت کم نوبت شما آمد از اونجا یک زنی فرار کرد پس شما هر کسی اون زن را عقد کرد مهریه را از اون بگیرید یا دوم فعاقبتم از معاقبات انتقام گرفتید عقاب عذاب یعنی بر کفار حمله کردید موفق شدید مال برداشتید خب از اون مال غنیمت به شوهری اون زنی که فرار کرده بدهید فآتو الازینه بدهید اونهایی را که از ازواجهم همسرانشون رفتند و گریختند مثل ما انفقو مثل اونچه که خرج کردند خلاصه چه تا قانون شد در پایان ستا قانون خداون نسخه عمل را بیان و واتقو الله از خدا پروار داشته باشید از خدا بترسید اون خدایی که انت... الّذی انتم بهی مؤمنون اون خدای که شما به او ایمان دارید اون خدای که شما او را باور دارید لذا این مقتضی تقواس یعنی ایمان ما می که ما واقعا خدا ترس باشیم این سی قانون بود برای زنهایی که از دار الکف فرار میکنن به دار الاسلام یا از دار الاسلام فرار میکنم به دار الکف میرند قانون دیگر قانون چارم برای زنهایی که تازه مسلمان شدند خداوند عزوجل به پیغمبر دستور میده که این زنها وقتی که میآیند برای بیعت پیش شما شما به چند چیز بیعت بکنید از اونها عهد بگیرید ببینید بیعتی که رسول الله صلی الله علیه و وسلم انجام میدادند بر چند قسم بود یکی بیعت بر ایمان و اسلام و عمل کردن به بی اسلام بیعت بر ایمان و اسلام بسیاری از اهل مدینه آمدند در مکه هنوز رسول الله هجرت نکرده و ایشون بیعت کردند هر کسی تازه مسلمان میشد شد ایشون بیعت میکردند دوم بایعت بر حکومت رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که حکومت را تشکیل دادند مدینه طیبه هر کسی می‌آمدند با رسول الله بیعت میکردند. البته اینجا بیعت چون هم نبی خدا بود هم حاکم بود پادشاه بود گویا گرچه عنوان پادشاهی کسی ذکر نمیکنه چون نبوت عنوانش خیلی بالاتر است لذا هر دو بیعت را یکی میکردند. با آن حضرت بیعت می کردند. یعنی گویا قوانین ایشون را قبول دارند سفون بیعت بر جهاد بود بیعت بر جهاد همون بیعتی که در بیعت رزوان در زیر اون درخت شجرت رزوان بیعت انجام گرفت یک بیعتی دیگه هست که بیعت بر ترک گناه است بر اعمال است و ترک گناه است حضرت جرید رضی اللہ تعالی عنہ می فرمد که رسول اللہ با ما بیعت کردن بر نماز و بر زکات و بر ترک گناهان چند چیز را نام می برند لذا این بیعت یک تربیتی است اگر بعد از رسول اللہ کسانی که امده هم بیعت کردند خلفا با خلفا هم مردم بیعت کردند و بعضی از علماء و مربعات بیان، شاگردانی داشته باشند موریدانی داشته باشند و با اونها بیعت بکنن بیعت بر چی میکنن؟ بیعت بر ترک گناه بیعت بر معروفات بیعت بر پایبندی خب از همین بیعت ها حساب میشه انشکالی؟ ندارد درست دید نفس بیعت ثابت است ان حضرت صلی الله علیه و سلم بیعت کردن دو چیز ثابت است یکی نفس بیعت یکی اینکه تزکیه و اصلاح و تربیت کردن یزکیهم چند جا آمده در قرآن مجید پیغمبر تزکیه میکرد اصلاح میکرد اولا از تمام آلودگی ها مثل شرک کفر نفاق بعدم بقیه گناهان تربیت می که چیکار بکنین صحابر شب و روز برای اونها برنامه داشت لذا بعضی امروز هستن که همین برنامه های اصلاحی دارن برنامه تربیتی دارن بیعت به بخاطر اینکه مردم اصلاح بشن مردم ترک گناه بکنن جوانان با اونها ارتباط میگیرن همیشه از اونها راهنمایی میکنن میگیرن مربیان خوبی باشن اشکال نداره بیعت اشکال نداره تزکیه اصلاح تصوف اشکال نداره فقط گاهی که مشکل از کسانی که عالم نباشند کسانی که نسبت به شریعت آگاهی داشته نباشند می آیند خودشون را جامی زنن اینجا و در از این لباس سوء استفاده میکنن خرافات هم خوان داشت یک سری رسومات درست میکنن یک سری مسائلی درست میکنن که خلاف سنت خلاف شرع لذا اگر مخالفتی هست و علما مخالفت میکنن با اونهایی که در مسیر غلط هستند در مسیر نادرست هستند در قالب این بیعت چندین خرافات هم مرتکب میشه مثلا گاهی بعضی افراد هستند که خودشون را معلوم نیست که از معصومین که رسول الله معصوم است از معصوم هم بالاتر میداند ام المومنین عائشه رضی الله تعالی می میفرماید که دست رسول الله در تمام زندگی به دست نامحرم نخورده اما بعضی ابا زنها بیعت میکنند دست میدهند یا زنها میرن دستشون را میبوسند این بالاخره این پایبند شریعت نیست کسی که مربی کامل باشد و پیر کامل باشد علامتش اینه که کاملا پایبند سنت است و ذره از جاده شریعت خلاف نمی کند وقتی که کسی چنین هست بر مسیر شریعت از اون مسیرش مسیر حق اما کسی که خلاف شریعت میکنه یا بعضی از خرافات را داره یا به نماز جماعت شرکت نمی کنند و خودشون را اولی اهم میدونند اینها پیغمبر خدا صلی الله علیه و در آخرین لحظات زندگی شما در حدیث خاندید که پیغمبر را با چه وضعیتی به مسجد به نماز جماعت بردن دو نفر گرفته بود یکی بازوی راستش را که بازوی چپش را کشان کشان می رفت به اون حال رفتند نماز خواندند ولی بعضیها ها طوری جلوه دادم برای مردم که اگر کسی با این سلسله ارتباط داشت زیاد مشکل نیست اصل این نسبت انسان را نجات میداد اینا خرافات هستن چیزی که یهود و نصارا را فریب داد همین بود که عمل نمی کردن گفتن نحنو ابناء الله و احباء ما محبوب خدا ما مغرب خدا ما دوستان خدا ما فرزندان انبیا ما نسل انبیا کسی که چنین باشد او فریب خورده هست او متاسفانه نمیتونه که شریعت را شریعت تو طریقت یک چیز هستند بعضی میگن نه اینا ظاهر بین هست اینها از شریعت میدونن از طریقت نمیدونن طریقتی که خلاف شریعت باشه اون طریقت مقبول نیست پیش خدای عزوجل ارزشی ندارد شریعت باید موافقه طریقت با موافق شریعت باشد بنا این اینها آمدند بیعت کردند الله عزوجل فرمود که ای پیغمبر با اینها بیعت کن بر چند چیز یا ایو النبی ای نبی خدا ای پیامبر خدا اذا جاءك مؤمنات این بعد اس فتح مکه شد زمانی که زنها ی مؤمن آمدن پیش شما یبایع نک یبایع نک که با شما بیعت کنند بیعت با چی؟ علی الله یشرک نہ بالله شیء بیعت بر اینکه شریک نگیرم با خدا هیچ چیزی را هیچ چیزی را شریک نگیرم با خدا این اولین چیز هست رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بعد از فتح مکه در میان جمع این زنها رفتند زنها زیادی از اهل مکه جمع شده بودند تازه مسلمان شده بودند بیعت می گرفتند. در میان این زنهای تازه مسلمان هنده بنت عتبه بود همسر ابو سفیان که معروف است به هند جگرخار و این هند کسی بود که دستور شهادت سیدنا حمزه رضی اللہ تعالی عنہ را داد اما الان مسلمان شده وقتی که مسلمان شده در ردیف کسانی است که آمدن با رسول اللہ بیعت بکنند پیغمبر یک یک شرایط را میگفت. پیغمبر گفت که شرک نکنید با خدا هند در وسط گفت چون زن سردار بود و در رأس و زنها بود اما رسول الله نمیشناخت حجاب هم بود با صداش او را نشنخت گفت که لا شرک نبالله گفت که این شرط خیلی مهم است نباید فرقی بین زن و مرد باشه هند گفت مردها هم باید از این به بعد شرک نکنند زنها هم باید شرک نکنند ما از این به بعد با تو عهد می بندیم که شرک نکنیم شرط دوم چی بود ولای یا سرقت نه دزدی نکنند. هند گفت که یا رسول الله شوهرم ابو سوفیان به من پول زیادی نمیده. گاهی مجبور میشم از مالش چیزی بردارم. آیا این دزدی حساب میشه؟ اینجا بود آن حضرت متوجه شد که کی این کیه؟ این که کی میگه شوهرم ابو سوفیان رسول الله گفت که شما هنده هستی. گفت بله من هنده هستم هنده بنت عتبه هستم و متوجه شد که رسول الله الان شناخت گفت که یا رسول الله دعا بکن که خدای تعالی کوتاهی های ما را در گذر بشه ایمان ما را قبول بکنه و اون اشتباهاتی که در زندگی داشتیم اون اشتباهات را ببخش اون اشتباه کدوم اشتباه بود سید شهده حمزه رضی اللہ و تعالی نورا به فجی ترین وز شهید کرده بودند همین هنده دستور داد به وحشی او وحشی مسلمان شد و جالب اینجاست که وحشی بعد از اینکه مسلمان شد ای غلام افریقایی بود حبشی بود همیشه خودش را سرزنش می کرد که من بزرگترین سردار مسلمان همزه را من شهید کردم اون زمان جاهل بودم نادان بودم نمی دونستم و در صدد از کنم که جبران بود که یک کاری بکنم برای اسلام و خدمتی بکنم تا این جنایت من جبران بشه تا این که وحشی بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم در جنگی امام در کنار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو شرکت کرد و در اون جنگ که بزرگترین دشمن رسول الله موسیله ابن کذاب بود این موسیله کذاب ادعای نبوت کرد در زمان رسول الله ادعای پیغمبری کرد اما هنوز به جنگ رسول الله با اون نرسیده بود که رسول الله وفات کرد و بعد بکر صدیق ادامه داد این مدعیان نبوت را تعقیب کرد دنبال کرد لذا جنگ یمامه در گرفت یک جنگ بسیار شدیدی بود که هزاران نفر شهید شد اینجا هم وحشید به دنبال خود مسلمه بود تا اینکه مسلمه را زد و کشت و بعد گفت که الان خود دلم خونک شد الان خورسند شدم که اگر بزرگترین فرمانده مسلمان را کشتم بزرگترین فرمانده کفر را هم من کشتم لذا جبران شد اینجا هم هنده وقتی که رسول الله شناخت و گفت که شاید تو هنده هستیم این سالات را میکنی گفت بله یا رسول الله من همون هندم دعا کن که خداوند گناهان ما را ببخشه و اشتباهات ما را نادیده بگیره و بعد سومین چیز که خداوند فرمود یزنی نه اینا با شما بیعت کنند که زنا نکنند هند گفت که یا رسول الله زنا و بی افتی کار زنهای شریف و خانواده نیست و اون زمانی که ما غیر مسلمان بودیم ما کافر بودیم از این مسائل بدور بودیم، الان که مسلمان شدیم به طریق اولا ما نزدیکی این مسائل نخواهیم رفت زنی که خانواده باشد آزاد باشد و شرافتی و عزتی داشته باشد نزدیکی مسائل نمیره واقعا این زنهایی که دنبال این مسائل هستند بی هستند این زنهایی که در این فضاهای مجازی امروز فضای مجازی به ایک ای برای جوانان ما تبدیل شده زنهایی که در این فضاهای مجازی مردها را جوانها را ترغیب می دهند اینا هر که هستند بدونید که اینها اصالت ندارند اینا از نظر خانوادگی پسترین افراد هستند اینهایی که واقعا زنا را بی حیائی را فساد اخلاقی را ترویج میدهند اینها یا اینکه نطفه حرام هستند اینجا هنده میگه زن شریف هیچ وقت این کار را نمی کند زنی که خانواده داشته باشد زنی که اصالت داشته باشد اون زن از این کارهای سبک نمی که خودش را به معرض نماز بین این قطعا اصالت نداره اون از این اقشار پایین هست که آمده و خودش را به عنوان زن شریف جا زنه لذا گفت که ما اون زمان همین کار را نمی کردیم چونکه اصالت داریم الان چطور که مسلمان هم شدیم و خدا این شرف را به ما دادیم و وقتی که این آیه را خاند رسول الله ولا اولاد خودشون را نکشن چون هند هم پسرش کشته شده بود و هم از کنم که پدرش اونجا کشته شده بود و هم برادرش باز میگویند بالاخره وقتی که رسول الله گفت که اولادش خودشون را نکشند چون مشرکین رسم داشتند از فقر و از ناداری و بعضی وقتا از آر دختران را میکشتند پسران را میکشتند هند گفت که یا رسول الله ما چه کسی را بکشیم بچه های ما جوان شدند ما تربیتشون کردیم جوانشون کردیم بزرگشون کردیم شما در جنگ بدر اونها را به کام مرگ فرستادید کی مونده که الان ما بکشیم لذا وقت این هر چیزی که آن حضرت می فرمود اون یک جمله بر او می گفت وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ و پنجمین چیز فرمود و لا یاتی نک ببهتان یفترینه بین ایدین و ارجلهن بهتان نشند تهمت نشم بر کسی بهتان نبندند که اون بهتان را یفترینه بین ایدین و ارجلهن جلوی یعنی اون بهتان را خودشون درست کنند وقتی که این گفت گفت که واقعا بحتان گفتن هند گفت بحتان گفتن خیلی بد است و واقعا خداوند اززوجل در این کلام در قرآن کریم انسان ها را به مکارم اخلاق دعوت میده چه جمله زیبا و چه نصیحت های زیبایی هستند و آخرین شرط ششم و لا يعصینک معروف در هیچ معروفی تو را نافرمانی نکنند هر کار خیری و کار خوبی که دستورشون دادی انجام بدند هند گفتید رسول الله عظیم به بعد هر معروفی که بگی چشم انجام میدیم هر منکری که ما را من کنی من میاییم و بعد از اون نافرمانی شما را نمی کنیم الان که ما در جلسه شما نشستیم و داریم با شما بیعت میکنیم عظیم به از دلمون در آوردیم که نفرمانی شما بکنیم بلکه از این به بعد با جان و دل از شما اطاعت میکنیم لذا این شش چیز را خداوند فرمود زنهای مکه بر این شش چیز با رسول الله بیعت کردند خداوند می اگر آمدن بیعت کردند ای پیامبری من با آنان بیعت کن و استغفر لهن الله برای اونها از خداوند از و مغفرت بخواه بخشش میخواه الله غفور و رحیم این علت است چون خداوند هم بخشاینده هست و هم مهربان است خب بعد از اینکه موضوع بیعت تمام شد دوباره زجر بیان شده برای اون مسلمانانی که با کفار دوست هستند اون موضوع اول سوره در آخر سوره مجددت تکرار میشه الله میفرماید یا ایها الذين امنوا ای مؤمنان ای کسانی کی ایمان آوردید لا تتولوا قوما شما دوستی نکنی با اون قومی که غضب الله علیهم خدا بر اونها غضب فرموده خدا بر اونها غضب فرموده قد یئسوا من الاخره ببینید قوما غضب الله علیهم کیا هستند بسیاری از علماء معتقدن که منظور یهودی ها هستند چون ما در سوره حمد خاندیم که غیر المغضوب علیهم مغضوب علیهم کی هستند؟ یهود در سوره بقره هم خاندیم و غضب الله عليهم هم و لعنه هم خدا انها را بر انها غضب فرموده باو به غذب من الله باو به غذب من الله چند جا بحث غذب را خاندیم که این غضب بر یهود با پس این خاطر مفسرین می مراد از این قوما غضب الله علیهم یهودی هستند. با این یهودی ها دوس نشید قد یئسو من الاخره این علت از همانا انها ناومید هستن از آخرت کما یئس الكفار من اصحاب القبور همان گونه که کفار ناامیدند از اصحاب قبور یعنی چه ببینید دو تا تفسیر ذکر می کنم عرض می کنم یکی اینه که یهود به آخرت که ایمان داشتند میدونستند که قیامت برپا میشه اما یهودی ها از آن جایی که میدونستند که رسول الله پیامبر راستین خداوند از زوجال هست و هم این میدونستند که ما از روی تعصب ایمان نیاوردیم لذا به آخرت امیدی نداشتند میدونستند که آخرتشون خرابه بسیاری از افراد در دنیا علم دارند حقیقت را میدن اما گرفتار خرافات گرفتار تعصب شدند. و می اگر ما به همین صورت بمیریم بدبختیم لذا یهودی ها هم از آخرت چی بودند؟ ناومید بودند قد ییسو من الاخره کما ییس همان همانطور که کفار مشرکین از اصحاب قبور نامیدند نا چطور ناومید هستند؟ که میدونند که اینها دوباره یعنی اونا عقیده دارن که این کفار اصحاب قبور دوباره از قبرها زنده نمیشن ناومیدن در حالی که زنده میشن اما یک تفسیر دیگه اینه که اونها از آخرت ناامید هستن همان گونه که کفار ناامیدند کفار ناامیدند که در آخرت برای اونها هیچ چیزی نیست کدوم کفار من اصحاب القبور من من بیانی هست یعنی اصحاب القبور ببین کافری که زنده است او به آخرت اعتقادی نداره اما اون کافری که تو قبر هست از این دنیا که رفته اون چشمش باز شده اون واقعیت ها رو میدونه ولی نامیده نا میگه کیامات که بشه خدا به من هیچ نمیده من عذاب میده چرا؟ چون من در دنیا ایمان نیاوردم چون من در دنیا ایمان نیاوردم لذا الله عزوجل میفرمايت یهود چنان از آخرت ناامید هستند در حالی که به آخرت ایمان دارند ولی میدونند که اینها زد کردند عناد از خود نشون دادند تعصب از خود نشون دادند به همی خاطر خدا همین خاطر خدای عزوجل هرگز اونها را نمیبخشد همینطور ناامید هستند خب این دو تفسیر هر دو تفسیر صحیح هستند بنده همیشه درباره تحریف عرض می کنم که بعضی از متاسفانه اهل تحریف در در دین اسلام هم بعضی آیات قرآن را جرأت نمی کنند الفاظ را جابجا بکنند معانی را جابجا می کنند بعضی از کسانی که گرفتار شرک کند گرفتار خرافاتند و گرفتار غیرالله پرستی هستند گرفتار قبر پرستی هستند اینجا طوری معنا می کنند که این معنا هر عاقل میداند که این معنی را اینها از خود درست کردند این در واقع کسانی که چنین تحریف بکنند و به مردم بدهند به مردم قرآن را تحویل بدهند اینها وزرگتری خیانت را با قرآن و با دین کردند خب این افراد در بلاد پاکستان و هندوستان زیاد هستن اهل خرافات، اهل شرک، اهل قبرپرستی. اونا چی میگه؟ می اینجا خداوند اززوجل تشبیه داده یهود را به اون دسته از افرادی که از اهل قبور ناامیدند. یعنی چه؟ میگویند که ما همیشه از اهل قبور استمداد میخواهیم ما همیشه از مرده ها استمداد می خواهیم از بزرگانی که مردن کمک می گیریم هر کسی که از مرده ها نامید هست و کمک نمی گیرد او کافره از عزویلله لذا اینطور تفسیر کردند. بعضی ها برای مریدانشان می گویند که ایمامینی شما دوستی نکنید با قومی که خدا بر اون قوم غذب کرده یهودی ها همانا این یهود از آخرت ناامیدند کما یئس کفار همان گونه که ناامید هستن کفار یعنی وهابی ها من اصحاب القبور از اصحاب قبور یعنی اینها نامیدند از اصحاب قبور چیزی نمیخوارد فکر میکن اصحاب قبور چیزی بهشون نمیدند نه نباید انسان نامید باشه اصحاب قبور میدند لذا مراد از کفار چی میگن؟ میگن که وحابی ها مراد از کفار یعنی اهل توحید این تعریف قرآن است این قرآن را طبق هوا و هواس و طبق خواهشات خود تفسیر کردن است این تفسیر را هیچی که از سلف هم نگفته و از خلف اون سلف هم که نگفته این را از خود درست میکرد. لذا تفسیر درستش همینه که یهود ناامید هستند از آخرت همان گونه که کفار که مردند نامیدن نا میدونند که در آخرت هیچ چیزی برایشون نیست.